از الله <سؤال> علی الله خبر واحد و که عمودهش دو تاست آیه نبر و آیه نبر و اون هم از شد که اختلافیز قده آیه نبر رو از میدونن دونن اصاسی تر نوره و از شد که این صافتن اگر ما باشیم و ظاهر آیات می گوهده که همون آیه نبر باز احتمالش شیشتر آیه نبر آیه نبر باز احتمالش شیشتر آیه نبر این صافتن مگر با شواهد خارجی و زمیمه به اصلاح خدا آیه دلالت بر این جهتی که گفتن نمیم چند تا آیه دیگم در ها در گفت اصول آمده البته اصلاح آیاتی که در اول بوده و روشه حساس بودن همینا بود اصلاح در بحث اینجا از این آیه مثل فخرازی فقط همین دعایه نفرنبر رو ذهر کرده یکی این تردیجا از آیات دیگر از آفشات قبل از بوده یکی ایچه اصطلاحا آیه کتمان از او تعبیر میشه این آیه در سوره که بقره است اِنَّ الَّذِينَ ما مَا اَنْزَلْمَا اَنَ الْبَيَّنَا فَالَهُ من بعد ما بیاننا ناس فر کتاب قلائه که الله و الله و البته آیه موردش سراحتا کتمانه یعنی این کسانی که کتمان بکنند اونهایی به خداوند فرستاده و یراف و خدا فرستاده اینها ملعونه و که مجل استداله با آیه اینست که اینه که اگر کتمان حرام باشه پس اگر اعلام کردن اعلام واجب قبولش یعنی وقتی بر اونها کتمان حرام باشه پس بیان بودم حالا که بیان میکردم واجب قبول میخواد علم بیاد، میخواد علم بیاد. هم معدی که حصول علم یا حصول علم بشیادن تمسو که به اطلاق این جهت کردن که میخواد علم باشه یا نباشه این وجه استدلاف استدلاف وای او وای که به یک نوع به استدلاف ماها اسمشی گذاشتن بلده چون مرازمه عرض مرازمه موقعی نه مرازمه کلی این ملازمه موردی رو ما اینجور معنا کردیم که در بعد از محوره ولو حکم به یک عنوانی رفته و که به ملازمه حکم یک عنوانیگه هم در میاد اصلا فرسوی بکتن که در آیه حرف شدن میتونه مثلا کش رجب کنه صورتش رو باز بکنیم در حالا اون آیه روایه یا مثلا دستش بیرون باشیم دستش اشغال نداره مناده کف ویچه با کفه این رو میتونه و از این حکم که جواز کشف ورژ و کفین باشه استفاده کردن که مرد هم یعنی روزا دفعونند در بینید دوتا بس اونی که مصفوره در آیت یه حالا آیه یا جواز کشف ورژ و کفین از او استفاده شده به ملازمه موردی اصلاح ما ملازمه موردی چون ملازمه را ما برسیم بایی کلیس یعنی که امروشه نهی از عزده یا مقدمه با تو باید اینو رو ملازمه کلیست ملازمه موردی رو در خود فرق متعریض میشونم مثلا دوست همون مثال محروبی که چند بازه کردیم که اگر این مقدار مرده شد آب چهار کشیده شود، چهار پاک میشونم یعنی خب اگر چهار پاک شدون لده شاه هم که در اصنا آبی شدونم پاکی و حالا مدیده همون دن دل و سطل و تن آب و این هم به استداد پاک میشونم این توضیحاتشو سابقا از خریم این ها در اصطلاح هم بشیم ملازمه موجودی پس آیه نازل است با حرمت کتمان به ملازمه در این حجوب یه چایی دیگم در قرآن داریم ولای حضا نه یک تن ماخرر زن جایز نیست فرشونی که خداوند در وحیم و او و حرار داده کتمان بونه. گفتن اگر کتمان برزن حرام باشه پس اگر گفت شما قبول رو کنیم میخواد انتدار رو کنیم اینم هم به همین شد البته این ملازمی موردی به اصطلاح به دو زایی بحث میشه نگاه کرد یک زایی هم میکرد آنه همس کردیم که آقای خوی دیگران از همین راه میبن مرمون شیخ همساری هم دیگران اینا از این راه بیشتردن چون قرمت ملازمه داره با وجوب قبول وجوب قبول هم مخلقا خاطر این پیدا روش نمخواد نشید باشه این همین نیست که آدم هست یه رایی دیگه هم که شبیه رو ما مطرح کردیم و امیم که از هر این نیست از مجموعه شواده کتاب سنت دست بیاریم که در لاحرن تعلیم رو و روایان این یکی از اصالی بوده اصالی به بیان بوده. که با مثلا با یک معنای کشنده نرخی داره یک معنای اثباتی به ایجابی اراده باشه این خودش یک مطلبی است که رایش عالم گفتن ولایۃ لله همان یک ثمره ولو به سیره نحوی ولایۃ لله نه لکن مراد جدیین است اگر مطلبی گفتن یعنی اینم اثبات میشه که اگر مطلبی گفتن قبول میشه مثل لازره و لازره و ولو لسان جسان نفیه لیکن مراد جدی این است که شارع نیاز جلی خیار می یا جل حق شخه میکنه که سابقا اشاره کرده می از این معنای دوم که الان من اعرض کردم دقیقه از اون معنای اوله حالا تو بست لازره که هست که من شرحش رو می دیم این خودش شکل بحثیست الان که زهنه حوض ما هست که نه اینا لسانش لسان نفیه در قرار بکنی مثلا لازره لسانش لسان نفیه توش اصباد نفا بوده که لازره نمیتوه جهل خیار کرده لازره فوقش یاد لاز لزوم رو برداره ایک حکم رو برداره اما جهل چیزی نمیکنه مثلا حدیث رفت میاد لسانش لسان نفیه میگه اگر تو فرامان شرعی نسیان توش آمد برداشته میشه حالا هستن یک واجبی هست ده تا جزد داره یه شما فراموش کردید میگه لسان حدیث طرف این است اون جزء برداشته شد اما این که شما تطریح به نه جزد دارید این دیگه لسانش نیست خوبه برسان اونی در قصور خیلی مانمه این لسان ما با حدیث طرف روشانست بحث فنی و اصولی چیه ما با حدیث طرف اثبات بکنیم این جزدی که نسیان شده این برداشته شد این میشه اثبات کرد اما به اون جزء دیگه تاکید دارین این دومیش دو خیلی مهمه حالا که اون جز رد شد تکلیف ما خورده به اون اون جزء دیگه این همون اصطلاح نیست حدیث صرف مشریع نیست اگه شنید تازگی در اصطلاحات و اصول شیعه این آماده در قدیما نبوده حدیث صرف مشریع نیست این که گر مشریع نیست یعنی همین معنا یعنی حدیث صرف اگر استفاده کنه یک جزء بخاطر نشیان برداشته شده اصفات نمی کنه بقیه عدیزه ها تکلیف دارن شون تکلیف اولی به ده جزبا دو این که تکلیف اولی یک جز اش به خاطر نسیان برداشته شد این با حدیث را این که شما تکلیف دارید به نوجوز از چرا دارید من از دیم تماسی که من با حدیث را چند بارم تو بحثا را که بحثا ما این روزه کردید اشتالی که الان در حوضه های ما هست مرمون های این استادون های دیگر که حدیث رفت مشرع نیست یعنی چونه مشرع نیست یعنی حدیث این میمیگه شما مکلت داره ده جزید و توضیح این مطلب در هم حدیث کنیم و هم در حدیث لازره بعید نیست بگیم که یکی از راه هایی که در اسلام اصولاً بوده بگیم باید با شواهد قرآنی و شواهد روایی بحث این تعبیلی که من میگه من کمتر دیدم که این بحث کلیش کمتر دیدن. و اون این که ما در ادله شرعیه مواردی داریم که لسان لسان نفیه لیکن مراد جدی اثباته مثلا اینجور ولی هلو لحنن یک سون ما خلقه لافی ارغامه نه ولو اثبات میکنه که قرمت کتمان رو لیکن در حال هم قبول اثبات میکنه وجوب قبول رو لذا رواست داریم که اگر زن راجع به عده یا به حید یا به یا به دیگه یا به اینکه شوهر داره چیزی گفت نگفت حرفش قبول میشه تو صد المرات تو صددن یه مدار تمک شده در کطور ف به این آیه در کطورسط اهل سنت البته چون روات خاص شه. ما روات هم داریم تم که بریم. در اینجا هم همینطوره انمون ما نظر ناممه از ویه این اینکتمان، ما انزل الله اگر حرام شد این معنی جفتیش این است که شما هم باید قبول بکنید کتمان برش حرام بعد آقای خویی فرمودن وفی هم نبو من آقای عباقیشون مخوند ملازمت بین حرمت کتمان ال... و وجوب قبول تابدن مقام این اینشون میگه در اون آیه فرهام قبول میکنیم آیه زن اما در اینجا در این آیه که محل کلامه قبول نمی کنیم از الموضوع لحرمت الكتمان آمون استقراغی اون که حرامه به معنا حرمت الكتمان بله الا کل احد کتمان بر دانه دانه افراد حرامه و در مقابل چی میشه؟ در مقابل اخبار جمیع میشه وقیدش اخبار جمیع میشه فیحتمل ان یکون الوشتی ها ان اخبار الجمیع ممنوع یجوب العلم چون عامش استقراییه یعنی کسکان بر کل واحد واجدن حرامه. پس اگر کسکان بر کل واحد واجدن حرامه، اون اونجایی که قبوله کجاست که جمعیشون اعلام بکنن بیان بکنن اون نمیشه نه در اون حکم دومی عاممشونی اولی میشه عام استقرایی چون ملاحظه رو باید در بیاریم از حرمت کسکان وجود قعود وجوب قبول جایی میشه که همه کثمان نکنند ولای و حاصل مقام و این به حرمت کثمان در باب نساء لان طریق احراز ماخیل از نفس چون ار... ارها نساء منحصر از خودشونه اما اینجا نه منحصر در یک نفر نیست اینانذی این مجموعه وقتی کثمان بکنن حرام مثلا 20 نفر اینا کثمان کردن احرام از وقتی بی اعلام کردن میشه قبولش فوج میشه خبر می و اخبار و معلمماللا و فیزل علم قالدن صله اولم میکن اخبار ها غجهن تع بودن و, و قویهلتدل امکان تحریمون کثمان علی ها لحبر این همون راه متعافه که الان عرض کردن. یه راه هم ما رفی که از این راه دقیق سر حال اون دیگهشالده رو بشن س بله به بخلاف مقام بله اما در مقام نه اینکه حرمت الکیسمانفی کئنما هو علا علماء الیهود چون ظاهرا آیه نازل شده به علمای یهود ظاهرش اهل کتابه البته الّذین اقفو علی الناس ما کانوا حافظا ثورا حالشون یهود نوشته انجیل هستند من علامات نبوت نبینا و شفاعت عیسی صلی الله علیه و آله به حیث لو لا لزهر الحق لعامت الناس اینجا کسما مراد علمای یهود خلقه من تحریم این کسما ظهور الحق نه اینکه یک نفرشون اعلام بکنه نه ظهور حق باشه به درجه ظهور و اسو حصول القتل ناس لا قبول القبر تابوده و اله یه شده به ما ذکرنا اولهو تعالا پی من بعد ما بیمناه ناس. خبا نگه رو بر مردم روشن کردیم پس همونی که روشنه توی تعبود نیست فتحسل این لا ملازمت بین حرمت الکتمان بله و وجوب القبول فلم لا ملازمت بینی بله بعد یکی این قلط قلط داره که رفتی به ما فی نداره بعد میگه ویدولو علا زکر ما زکرنا اینه خیلی اون قلت خودش مهم نیست اندرسه من امنال غراز من حرمت الكثمان فی مقام ظهور الحق و حصول علم بلا آمت ناس لا وجوب القبول فعبده که از اینه انمور دل آیه ونه قبط نبینا صلی الله علیه و و من از ظاهر ازم و حجیه در خبر واحد فی اصول دین خبر در اصول دین حجیه هستنم. این که ایشان فرمودن آیه مربوط است به نه این واضحه جای جایه جایه بحث نداره که آیه مربوط ببونه و سیاه و آیات البته این سیاه آیاتی است نیست که همه قبل و قرد یکی از آیه است که مربوط به حل تورات و انجیل و نهل تورات از کردیم در مبینه منوره ولی خیلی محالا به نزول موردی معتبر نیستیم در نظم مدینه مناظره بیشتر مخاطب از اهل کتابه که همه مخاطبین اهل کتاب یهودان. چون نسوان اهل ابو تو مدینه تو که مکیا تک تکوچی ناسوان بودن توی مدینه هیچ شواهد نشون نمیده. و آیه مبارکه در سوره بقره است که بنابرا مشهور مدنی مدنیه ظاهر خود این آیه ان با همین آیات مدنی میخوره. نمیخوره با آیات مکی. این چه راجویی؟ به احتمال اینکه مراد از آیه مبارک ادمای یهود باشن این های این که این ادمای یهود رو خداوند لعنت میکنه و خاطر اینکه اینها مسائل حق رو بیان نکردن برای مردم ظاهرش اینه ظاهر آیه مبارکه یعنی به عبارت اون که مورد نظر در این آیه مبارکه است یک مورد مهین است یک موردی است که حساب شده است و حسابش هم گذشته مال آینده هم نیست اون حساب این بوده که ما صفات پیغمبر و رسالت رو و اینکه بعد از حدیت موسی حسی ایسا خواهد بود و حسی ایسا چین خواهد و بعدش ازشان پیام برای اسلام خواهد بود ما تمام اینها رو بیان کرده بودیم علمای یهود سعی میکنن اون رو محفی بکنن پس این اصلا بحثه چرا توی دو حدیر خبر سقدر درست یا حدیر از سبر توی این قسمت این ناظر یک واقعیت گذشته است اصلا احتیاج بین این استبلالات مقومه استاد نداره. و اون استبلالش هم بیدینه که ما سفات پیغمبر رو بیان کردیم به وحیه الادی گفته شده اصلا ما در ادهی از توابیخ که ادهی از یهود همون اول مثل مخیره سریع ایمان رو بود چون گفت ما اصلا مدینه مضمونه کلام ادهی مدینه آمده بودن منتظر، این بودن که نبوت رو آن اعلام بکنند چون دیلو بودن در کتاب های خودشون در همین کتاب تورات فعلی هم هست برزید شواهر من نمیخواب آده بحثش بشم غیر سالاون به سال آهیاتی که در قرآن هست شواهدی الان در همین تورات فعلی حتی یه لحظی است که اصلا دقیقا لحظ محمده که اونا ها برنه دیگه گرفتن من برزید بحث نشتم که جش پس این آیه مبارکه اصلا من واقعا فکر میکنم این رب ساعت اهبه صحبت کردیم پس یا اون باشه این آیه مبارکه نه ربطی نمنحی موضوع و محمول و تعبیر و شنر موضوع باشه نباشه یه ربطی با حکم خبر عرضی من داره یه واقعیتی که در تاریخ واقع شده این واقعیت گذاشته و اون علبین یک شمون ما انزلنا ما فرستادی این چه رفتی بحث خبر وارد باهده اصلا در تصابلات شیعی حالیتی سیده اصلا مدینه از امام صادقی مطلبی نرمی این نه با ما انزلنا می کنه ما بیان ناول ناس می کنه نه بود چه هستنه اصلا که این آیه مبارکه کاملا سیاق آیه راچه به یک مطلبی سیلر سابق بوده و علماء یهود که در مدینه بودن ارز کردن شواهد از قرآن هم موجوده و شواهد اهل خود تورات هم معتقدن که نسخه از تورات اصلی و تعریف نشده در اشتیار اخبار مدینه وجود داشته نسخه درستی وجود داشته یعنی اینطور نبده که نسخه نبود این آیه مبارکه ایناللدین یکتمون این علماء یهود که اینها رو کتمان میکنن ما انذر نامنال بینات وله هدا حالا بعضی از مفسرین گفتن بینات و خدا به این معنی از بینات که دو نظر این خودش که اصطلاح قرآنی یکی کلمه بینات بیان بین بیانه که در رواستمون هست از دماغ عرضی بینتون بیانه ما یه بیانه و غیر طریق اصفاق هرچیو که ما اصطلاح هم که ما اسمش رو خودجب گذاشتیم یا برهان گذاشتیم یا قرآن تعبیر به سلطان ما انظر سلطان میینه به اصطلاح اونی که ما علامت قرار میدیم این در اصطلاح مثلا تب در چیز قدیم هست هستی که مشارکت الحد و الباخان که گاهی و حد و الباخان یکی میشن در تب مثلا میگن گاهی و یک چیزی علامت مرضه یک چیزی خودش مرضه مثلا این سرعت نفس این علامت مرزه یا خودش مرزه اون با مثال طب از این که بینات اون چیزیست که علامته گاهی میشه که خود علامت با خود مرزیه کیه گاهی نه اصلا خیلی ها معتقده از سردر غالبا خودش مرز نیست علامت یه مرز دیگریه تب خیلی از جاهاش مرز نیست تب خودش مرز نیست علامت مرز دیگریه دقیق میکنیم پس این بیانات مراد همین اصطلاحی که ما علامت یا اصطلاحاً بشینیم مقام اصباد یا بشینیم استطلاح یا احتجاج یا حجت یا برهان اینها رو اصطلاحاً بشینیم بیانات ما انظر نا این از بیانات ما بیاناتی یعنی به عبارت اخرى ما برای یا برای اتران شواهدی رو در تورات گفتیم مثلا ایم واره که النبی العامی الّذي جدّونه هم مكتوب ان و اندرون کتّورات، یوهللهم و تجیبات و یوهرم عليهم وتخوارث، ریاض عنهم اسرهم و الاحلال الّذي کان، این بیانات، بیانات مربینه. ماش اباده استباطی رسول الله رو در کتّورات بیان کردیم، که صفات پیامبر این جوره، این جوره، این جوره. الوهدا اینمیدی استله قرآنیس. شما الان به اسطلاح بشیم چهار راه نما خدا یعنی مراده از خدا غیر از علامت، یعنی غیر از استبلاله مراده از خدا اون رسید علامتی رو که نفس میکنه که راه رو به شما نشون میده حالا اگه شراخ بود میشه مصباح خدا شراخ نبود خودش خداست مس خدا اصطلاحا اینه تنظر نامونه بینات ولی خدا یعنی ما مثلا فرسوندیم که غیر از اینکه که طریق اسپارت و شواهیدی رو برای معرفی رسول الله هدایت هم کردیم یعنی مثلا گفتیم که رسول الله این علامات رو شما بگیدیم شما رو به خانه رسول الله می این علاماتی که تو راه می رسوند مثلا فرشون فیرام ممکنه مثلا فرشون پارچه بگیدن که هرچه هر باید اینسان دنبال همون پارچه باز بره این ما انزل نوان الوی ناطب الهدا مراد اینه این هم من بعد ما بیان ناهود ناسد خداوند هم میکنه سرش رو بیان میکنه که چرا این افراد افراد بدی هستن افراد ناسالی هستن چون بگه ما اینها رو بیان کردیم برای مردم، خیل کتاب غالبا در کتاب در اینچه را طوراته در کتاب انبیا اصابه می. ما اینها رو بیان و خدا رو معین کردیم بیان کردیم مع که استی از علماشون در فکر کسمانی بودن خب چین افرادی به اصطلاح ما انرژیا بگیم هم ملعون تاریخ هستند هم تاریخ اونها لعنت هم انسانیت اونها لعنت بود تعبیر قرآنی نه الله و الله اینا به لعنت الهی و به لعنت تاریخ مبتلا میشن این مراد این, این چیه رفتی نداره به خبر باید رفتش نربیه بکنه اصلا رفتی به مسئله خبر به حجر خبر وقت داره حالا که یعنی نوچه نارم کنده ما هم گفتیم به الله حسن بلکل این این و من جولت ال هست، آیت اهل ذکر و کنتم قوله اینجا باز کلمه بیانات هست بل بیانات این بل بیانات این حالا خدا رو خوبی توی درست خرموندن یا این مبرر روشه برها کلمه بیانات و زبور آیه بعدی صدر علامت بعدی این آیه اول 33 بعدی 34 این به بیانات و زبور صدر آیه بعدی و تقریب الاستلال به با آیه, با آیه شریفه تقریب الاستلال به آیه سابر البته این نکتی ریم داره لید از اونهای سابره چون در اینجا سؤال آمده فصل و احلال ره خیفیت تقریب اینه که مهم قبول کلام اهل ذکره احتیاج به سوال نداره چه ما سوال بکنیم چه سوال نکنیم ما به اهل ذکر مراجعه اهل ذکر هرچی گفتن قبول باید بختم این رو البته خوی ندارن؟ بله به الله لذب کن و سوال ندارم نه این راه میمیم نیستی کن سوال بگیم اوه که فهمه که در اینجا سوال موضوعیت نداره اوه از طبیب سوال بکنه اگه سوال نکه خود طبیب به شما بکنه قبول می کنید این سوال شده یه مقدمه متعارف و عرفی بر این که اهل ذکر نظرشون رو بیان بکنن پس خصوصیت سوال رو حضب بکنید یعنی اهل ذکر هرچی گفتن شما قبول بکنید تحبیدن ولی علم فیده نشه که حجب خبر احل از این را باشید از این آیه اهل ذک نه توش احل داره نه توش سق نتیجه اینکه این ایده قبول بکنیم اعلی ذکر رو اعلی ذکر معنی نشه و یا جواب عن الاستدلال به آیات عایه ما ذکرناها تو جواب الاستدلال به آیات السابقه که ان, ان ف تعلیق وجود سؤال الا عدم العلم ظاهر فی ان الغرض ما حصول العلم ایشون میگه چون گفت پس اعلی ذکر امکان شما تعلمون معناش این است که این که شما تعلمید سوال نکنید پس این مرات اونجوری که انسان ایل نداره لا تحبود به جواب نه این که هرچی با شما قبول بخونه مضافن الان نمورد آیه ایغان ید نقوه و مهمورون به سؤال هم عوام یهود همبسه این آیه در مکه نازل شده از کردیم تا اونجایی که شواهد ما میشون میشه ما در مکه تا یه یهودی یه یه هم خبر نداریم نفسانی داریم که اما یهودی نه من ارز کردم چند باراجه به این ادیان سلاسه ای که در قرآن روش آمده مجوز و یهود و نصارا یکی هم آمده که خیلی مغلبه که مراد جدیشیه یکی هم یهود و نصارا و مجوز مجوز در اون سفری که از مکه تجار می برای در یمن توی یمن با مجوز فرخود داشت چون این قسمت شبه جدیره عربی به اسراح کلن در اختیار پادشان گیرانی بود استاندارهاشون تو یمن بودن تو مکه و مدینه چیزی چون صحرا خوش بود چیزی نداشتن نداشت کسی اونجا اون رو ایجاد کنه اون اصندارها هم در یمن گذشته بودن که اونها مجوسی بودن خود مردم عرب بودن یا مشرک بودن یا عربیان دیگه داشتن اما مسئولین اداری در یمن مجوسی بودن که از طرف ایران بودن بله اونی که رسما مسلمان ها بعدا در زمان مدینه با مجوس برخورد داشتم وقتی بود که بحره مسلمان شد تون بحره زود استان و پیغمبر اکرم علی ابن الحزری رو فرستاد بعدم خادم علی یا خادم علی بعد از ابو هریره و دیگران سر به و خادم علی در اونجا بعضی از اهفای مجوس رو از پیغمبر پوستی که حکومت مجوسو در بحره در مدتش به اونها صحبت شد الان که به ما این راجبه مجوس راستی به یهود هم ارز کردید یهود اساسا از همین فلسطین بود اده یهومت بودن اده یه هم آنه از فلسطین به پایین در اصلا همون تقسیم برگیری که داشتن تا حدود مدینه یعنی رسمند از فلسطین تا مدینه که اینجا اصطلاحا وادرقرار میگن اگه با موشی نایل از مدینه بخون تشبه مثلا سوریه یا تو اردن از همین وادرقرار میشن. بیابانیست که ده, ده بوده و قریه قریه بوده خیلی از این کارا یهودی بودن. توشون به یهودی هم بود یهودی بودن. تا مدینه از فلسطین شما تو نقش تا مدینه این آخرین حدیث که یهود وجود داشت. و خارج مدینه اون طرف بود کیلومتر کلومه، کیلومتر، کلومه، خیلی برد و سیچه که بود. این کل وجود یهود در جزیز عرب ده. از اینجا به پایی دیگه این به مکه و بعدین یمن و بعدین حال و یمن دیگه یهود وجود نداشت وجود یهود در مدینه در جزیره عرب به این صورت لذا توی مکه یهود وجود نداشت اینا محدودی توی من چه آتا سه سا قبیله بودن بنو نزیر و بنو قیمقا و بنو قاریزه خیبر هم بود فرک هم بود اینا آخر خسر دیگه از این مدینه و خیبر رو ن تو اینجا هم دهات زیادی بودن که یهودی ها ساکن بودن همان به فلسطین که رسیده می نزدیکتر نزدیک کرد می شود وجود یهود مزمیستر اصولا یعقوب که پدر اسرائیل یهود بنی اسرائیل دوازده وشیدی که داشت بنی اسرائیل می گفتن که از یوسفش معروف داره بنیامین بردار کوچیکش، بقیه خب دفت دیگه هم هستن جوزه اصفات با معروف از عرضم که خدمتون که اینها ها اصلاح اداریم نهدید این به اصطلاح مناطق رو تقسیم کردن تو خود سوراتشون دارن که مناطق جمعه چی بود تا مدینه بعد مقداری از مسیحی ها که در اصطلاح تزدیت را بودن بین این منطقه تا منطقه یمن که حضرموت بهشون گفتن الان نجران میگن نجران محل مسیحی ها بود یه مقدار تو هم مکه آمده بود به بعضی از اشائر هم سرایت کرده بود بعضی از اشائر عربی مثل تقلب این ها این توشون مسیحی داشت این عدیان رو که در قرآن ازشون نابرده شده کیفیت تواجدشون در من اسم ایران نبارده چون هم عرب های مدینه هم مکه خیلی با ایران وقت آمد نداشتن جزا از وضع مجروس اطلاعاتشون خیلی محدود بود نه این که ایران بیا دارم با موبدان موبد تماس داشته باشن اتکار مجروس رو مطلع باشن بله هست و خبر واحد لایتون رو خود فی اصول دین که از چیزون نوشته معمولونه به سآل ها و عوامل یهود معلومی ساله عوامل یهود باشن چون این آیه مشهرش اینی که مکیز علامایوها اگر مکی باشه با عوام یهود نمی سه یک مشکل اساسی در استدلال به این هست که دیگه هست و استاد سرکنه بقید جواب بدم به اون که ما مجموعه از روایات داریم که مراد از و اهل ذکر مراد اهل قیدی سامو داریمشون تصریح شده یعنی و از کردم به یک مناسبتی مرحوم آیه آقای, آقای بروجری خدسال با نفسه در این جلد اول جمل احادیث که بنا مقدم است یه بازی داره با وجود فصل اینه. یشون این روایه اونجا پشت سر هم اومده که اخبار خوب رو در یک باز واهه روایاتی که داره موضوع واهدی نه پشت سر هم میاره اما بسیاری این کار نمیکنه. اصلا همون بسیار یه حدیث فصل اهل زکم رو که اهل بیت بعدی حدیثی کنیم و بعدی حدیثی کنیم. بعضی حدیث مزبل، بعضی شدید. حدیثی که فصل او اهل زکم را داره اهل بیت. آیا برجری که از کارشون دارند جلد داره؟ تا یک شنجدی حالا همه جلد دارن. وقتی که وارد یک باب میشن حدیث رو دست بزنیم هر حدیثی که مربوط به دستخوشه هم دارن. اصلا خواستند ده تا 15 حدیثی که تو جزء فصل مراد مراز اعلی این را همه خوشش هم اوضاع از بودی توی معرفی جامال حدیث. اگر آن خواستن، اونجا مراجعه کنند. جلدیه یک جلد مقدمات است در باگ برجری است حسنالیمه. بیشتر وابسته آوردن. و یکی از اشکالاتم هم به اسطلال بایه همینه که مراد از اهل بیت اهل زه که بیت تنگی رفتی بودی به خبر باید نده آقای کوئی از این جواب دادن ولا یونافی داده کلتا روایات سریحه روایات انصافاً صریحه. نه فقط این که مراد از اهل زه ما هستیم بلکه تصریح داره که مراد یهود نیست آجون ظاهر آیه یعنی یهود دیگه میتوکیشون نوشن شن امام میگه اگر یهودی باشی اگر شما را بین اهل ذشت مراد علماء یهوده خب علماء یهود شما را دعوت بیان میکنن حالا من طرزم علماء یهود بگم همشه آیه جفرات خاص هست این سوی شما رو که یار مردمشون میشه مثلا کارشون دیگه ماسونیشه و حضرت ائمه علیهم السلام میفرمان که نمیشه مراد علماء یهود باشن اذن ی از اون قم از اونها الی دینه اگه اونا باشن خب دارند ببینن خودشون. امروز خو اینم خوام جواب بدم. ولایوناضیزاره که موصل اخبار من ان المراجع اهل ذکر مولای هم علی علیه السلام ایشون جوابش اینه که لنه اهل ذکر عنوانه عام. رو کنی. این تعبیرات اینجا نمی‌دونن. اینجا راهی نذاشتن که کامپیوترن هست، بلکه این تعبیر رو غالبا مرحوم آیا علامه طباطبایی داره. سیاد داره علامه. میگه در باب جریان تفسیر تعبیر به لای خویش میشن امغان و آم. علما قائلان اینه عنوان چه که با میزان مخصوصاً زیاد داره میگن باب جری و تصریح یعنی از باب اینکه عنوان اهل که عنوان عام نیست تصریح شده بر اهل بیت سلام الله در درمیفهمن میگن ایشون ایشان عنوان آنها عامه بله یک من الکمی و اختلاف و اختلاف موارد فی مقام اثبات نبوت الخاص یعنی پیغمبر اکرم بمواصف الله نبی او پر وجود سماوی یا رو مراد من اهل ذکر علماء اليهود و النصارى، ولا یسه ان یراد فیهاد المخام على اینمه نمیشونگیم به اینمه مراجعه کنیم برای نبوت پیهم برعکسند ایشون فرمون دربته لعن الامامه هر اون فکیفیم که اثبات نبوبه به سؤال عن الامام الادی تصبت او به نسل من النبی الله علیه و عالی نمیشه نبوبت و تعشب البته از آی خویی مطالب رو ایش تو بنابید خود مقرم آدم با فضی بود هر دوشون خود که شاید اضافه ما <تصفح> در خود قرآن داریم ولی یا برون لست و مور سلن کپ لست کپا بینی ولی کپا شا... شاهدم شا... شا بینی و غی بین نکام و من این دفعه علم کپا بلا شاهدم بینی و و من این دفعه علم و کتاب تفسیر شده و انگیر مومنی تو رو سونیان شده اونجا باید ساده به نبوت خود یعنی پیغمبر میخواستن یکی از شواهد نبوت خورد. یک خدا دو علیه نبیتاله دقل بکنه و یعبورو لدینه کفرو لکس و مرسلا قل کفا بله شدیدم بین یا بین نکن من من این دفعو علمون کتاب و کتا. در باید تصویر تردور از آقای که خود وجود مثل و مومنین اگر نسان خود درد بکنه اقوار شاهده به نبوت رسول الله هست خود احمد علیه مصر. اینه که علیه زیادی بعد از فیخم مراجع میکرم به مدینه فرسان از ما دو میزه این سآلاتی میکردم جواب نمیداده هم. و بعد از امیر المومنی سآل جواب میداد خود این شاهده بر نقوبت بود خود این شاهده بر نقوبت تعجب از ایشان لندن امام فران نقوبه فکر بیم اثبات نقوبه به سآل یکی از راه های اثبات همون نقوبت یعنی وقتی تر این قرد اصیل و محکم بود یکی از این قربی ها که من چون افیان ندارم که علیه نویتره واقعا مسمان بود اعتقادشی بود واقعا به محمد اعتقادش روشتن اگه اعتقادش من هم گیمان میرم من چون علیه نویتره مرد بزرگی بوده از انسانی خیلی بالا بوده فکرش میکنه که اگر بخواد اون اخلاق رو پیاده کنه از راه محمد الله السلام، بل این جدیه. والله اگر واقعا بدونم که علی علیه السلام به رسول ایمان داشت، من هم همین. یعنی از کشو وجود فر اصل این قضيه. خب واقعا انسان از نظر راه می‌گوشه، نهج البلاغه و الاغون خب میان یعنی امامت این معنای لزومیت سین در درجه هویت و معلوم یک درجه بسطی که به ذهن مردو اینکه که از کومیسا قرمود تیر رد به شهر سزی رحل را به اقویتن من لسانی این و لسانیشان اون مقام نقوبت و که خیلی مشکل رابطه بین اون مقام و حوام که ذهن پاری میدارن رحل را تا این و چیر رزیسی هارون هرکی اون هارون شون زبانه اقویت اون واسطه شد که بزنه اون حواره به نقوبت رو برسنه حالا یهان این مطلبی که اولاً ایشون اصلا به واسه نگاه هر در روایات تصریح شده به اینکه ذکر یعنی قرآن در رزیک ما این خیلی نقطه‌ای داشت؟ چون در قرآن هر جا صحبت مثلا آیه قبل که کتابخوندی من بعد ما بیانوا در کتاب این تورات اهل کتاب یعنی اهل تورات و انجیل در قرآن کریم ما مورد واهبی هم نداریم که از تورات تعبیر به ذکر شده باشه ما در قرآن کریم از رسول الله تعبیر به ذکر شده و از قرآن از آن که زیاد بدنظر الله علیکم ذکر رسولانیت لو علیکم آیات الله مبعینات در سوره قلعه رویخ جددین آمون و عمد صلاح دین ظلماتی لگون علایه حاله این که ایمه علیه سلام اصرار دارند که ذکر یعنی قرآن و اهل ذکر ما هستیم این معیده به شواهد قرقی قرآنه نه شاهد واحده این جواب آی خیلی مناسب با شعنیشان که از مراجعه شیعه است نیست با تفکرات شیعی نمی سازه یکی خب حالا می شد مثلا دیت... همون جا بازن زفت این بعد دا از ذکرش همون برآن اون بعد از زفت اختلاف رو میکردن هم گفتن برآن یکی در همون زفت دیت. همون آیه هم گفتش مراد برآن گفتن ذکر مراد در اونجا زبور در که چتابه بعد از ذکرم گفته شده مراد وحی که من توضیح ارز میکنم هلا آیهانه در آیات مبارکه قرآن از ایجوریان در شعور نفرمودی و انزل ما الى موسا و حارون انزل ما چیه؟ الفرغان و زیاهن و ذکرن للمتقین بکر اونجا حارون هم اضافه شده کلمه ذکر که آمده ذکرن للمتقین و ما در جایی بسیس این که جمهوری که محل شرحه که با جوابی خودش باشه هر جا در قرآن ما داریم ذکر یا مراد کتابه به ذکرون رکل قرون لما سمیه ذکر و این اطلاع به لذین اکتر لما سمیه و قرون نهول مجنون ذکرونه که برسه الان یا حالا با یک مراجعه ذکر رو یاداوریه این چون که اون آمشه اما مجموعه آیات کتابی کاملا واضحه که مراد از ذکر گاهی رسول الله و نظام اخباری هم که قالب تحقیق قرآن هست میگن ننظر نه ننظر نه نه نه نه نه حافظون هم مراد ذکر اینجا قرآن نیست مراد رسول الله ذکر نه نه نه نه نه این که به ما که ما عنوان ذکر رو بر رسول الله داریم بر قرآن داریم مالا غیر از اناوین و ما جایی رو به معنای ذکر به معنای تورات؟ در از این موردی که الان چند جور معنا شده تصریح شده باشه چندین مورد ما اهل کتاب داریم الا ماشاءالله تورات و انجیل داریم اما تبیر به ذکر نشده الان چنف مارکان یکی این که ایشون جواب دادن نه هم بعد اثبات نبوبه ولی امامه کنولای محل ذکر فلاود من از سآل من هم فی ما یا تعلق بالأحکام شرعیه که ما اهل الزکر فی زمان الغیبه هم الروباط به نسبت الى الفقه ها نمیدونه قیبت مرادشون چیه ایشون و الفقه ها به نسبت الى الروباط الى العوان و المعنى واحدون فى الجمی انم الاختلاف المصادر به حسب الموارد نفهمیدن حالا بله این قبول میکنه که ایشون اهل الزکر شامل راوی هم میشه اهل ذک شامل راوی نمیشه در از که انصافم وقتی که به مجموعه آیات مبارک تعمل میشه مجموعه آیات من تقییبا این روز همه نگاه کرده به این کلمه های که افمال آه راجب اهل ذکر اولا این دکتر من از بخونم اولا از این که افمال بحث بشیم چرا بیان از این آیه علو اهل لا این دو بار در قرآن آمده یکی در سوره انبیاء تواید سوره انبیاء اونجا به بیانات از زبور نداره اشتباه نشه سعه یکی و و ما ارسلنا و... و ما ارسلنا قبلک من رجال <تصال> ما از خلنا شد. قبلش لا تعلم انتوی فدر فسعلو اهل لا شواهد قبلش و بدش و اصافا خیلی واضحه که سیاهش و اینها که یوزع آیات مکیه. اینه که آرخویی من قرمدن عوامال یهود این که به عوامال یهود نمیخوره این که راجب به آیه سوریه عالمی در سوریه نه هم آمده اونم همینطوره و ما از قبل که الا رجال نوحی علیه هم فس اهل الذکر این کنتم لا تعلمون اینجا به الوینات را زبور داره بینات که نه از کردم شواهد اسلاحی حجج براهین ادله. زبر هم جمع ضرور کتاب مراد از زبر در اینجا یعنی نوشته ها یعنی برهانه های عقی و نوشته ها نوشته که از انبیا اصابه مونده مثل تورات و انجیل اینها نوشته که مونده اون دلالت میکنه احتبال در شاد آیخویی احتمال دادن به البیانات و زبور متعلق به تسال و اهل الذکر این کنتم لا تعلمون به و زبور گرد احتمال میرونی که اون رو اینجا آوردن شاهد این نیست یعنی در کدوم تفسیر البیانات و زبور به ارسلنا زدن اما ارسلنا قبل که الا رجال نوحی علیه ارسلنا به و زبور نه معی کنترلات تعلمون بالبينات و زور و ظاهرش هم این بیشتر میخوره حالا به هر حال که این شو کلمه بل و زور رو مرو صاری جا آوردن در این دو که هست یکیش این آیه بعدیش هست که نیست و آیه مکیه یعنی آیه سوره انبیاء مکیه آیه سوره نحل هم ادعای گفت مکیه تا سوره نحل طبیعت مکیه فرض گرفته شده 2 تا 3 این آیه در مدینه نظر شده اما راجعه به سوره هم بیا کسی نگفته که در مدینه نظر شده کلا در مکه است. یعنی به اتفاقه هست کلیتا مکهی هست هست بنابراین معلوم میشه یک مفهومی در اینجا مراد هست هم در مکه که خوب نبودن آیه آمده هم احتمالا قیل در این آیه که است. از در کتاب این کتاب چی آیه؟ اسلام آجام المفهر است این هر دا آیه رو مکی نوشته اما ارز کردم در مفسرین راجب به خصوص این آیه توی سوره نن که بگی نافل و داره تو خصوص این آیه گفتن مرده نیست بقیه هم نیست از این،, این آیه در حیرت دو بار در یک موضوع واحد ناظر شده اون موضوعش هم اینه که انبیاء است نمیخوزن اصلا پیغمبر اگر باید پیغمبر باشه اینشون ا مثلا بیا اسابق مثلا مثلا فجر موسی نشو. حالا ما نه شما سوال رو بین حضرت موسی بشر بود اما ما ماقم اینه که دارجال اون بیاله. اونها افراد بشری بودن که خداوند به اونها وعده میکرد و برگزیده الهی بودن. پیغمبر شما هم همینطور. این ظاهر آیه اینطوره. مخاطب هم احتمالاً در یکیش بله آیات مشکین باشه در مکه چون نسرانه خوبی کم بود یه اون پس کردم آیه مبارکه دو ماه داره پس اهل یکی مشرکی یکی اهل یهو وقتی یه شد, و شد اول یک با آیه صحبت بشه بعد